لا لم تانس ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا لم بسم الله الرحمن الرحيم تمام الحمد والصنا وستايش بخداوندي درود و صلوات فراوان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو با 26مین برنامه هفتواری زبانی دری خوش آمدید خداوند زلجلال را گذاریم که به ما فرصتی را مهیان نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جند الله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیره بله همکار عزیز امروز جمعه تاریخ 23 شعبان مطابق 13 جولای رادیوی صدای جندران نشریات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه دهد خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشد موضوعاتی که در برنامه امروزی ما گنجاش یافته قرار زیل است سلسله اندرس ها مروارید هفته و همین طور تحولات داغ هفته با ما باشید سلسله اندرس ها احمق را ستایش خوش آید سیموزر تقوا را می گیرد ارزشمندی به کمیابی هر چیز است نه به زیادی آن به هر که کم باید قانع بود ترحوم به دشمن مکن تجربه و مهارت مهم است زخم ظلم از زخم تیر بدتر است تا جان در خطر ننهی نه بر دشمن غلب نیابی با تلاش مقصد حاصل است چون نداری طاقت نیش مکن انگوش در سوراخ گجدم بين هذا <تصفح> الذي كان الله قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسفله ولا على من سرت للمجد رجلاه رب بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه فالدمع ليس على الأبطال نسفله ولا على من سرت مرواریدی هفته شنواندگانی نهایت عزیز در بخش مرواریدی هفته شما را خوش آمدید می گوییم به همه ما و شما معلوم است که در این بخش موضوعات جالبی را به خانش می گیریم چنانچه در شروع برنامه گفتیم در این هفته موضوع جالبی را زیر عنوان شمشیر یا ایمان انتخاب نموده ایم که اینک من به خانش میگیرم. شمشیر یا ایمان ضمن سیر اجمالی از ماجرای تولد دنیای نوین جهان اسلام که ناگهان سیر طبیعی و عادی تعلیخ را بشکست و از دل عربستان بیرون آمده جهان را فرا گرفت به های چند برخوردیم و ضمنان برای اهل دقت پاسخ این شبهت داده شد که گفتند اسلام به زور شمشیر تحمیل گشت زیرا همچنان که ملاحظه نمودید اسلام در مکه با ایمان عده فداکار که در برابر شکنجه با سختی مقاومت می نمودند آغاز شد و چون به مدینه هجرت نمودند که در آن شهر نیز با شمشیر وارد نشدند بلکه در اثر تبلیغات قبلیه که در میان مردم مدینه هنگام آمدن آنها به زیارت کعبه انجام گرفته بود. با استقبال عیده روبرو گشتند و به تدریج در اثر نفوذ معنوی قرآن کریم دلهای مردم مدینه را جلب نمودند. جنگه پی در پی نیز همچنان که ملاحظه گردید غالبا صورتی دفاعی داشت. از طرف پس از فتح مکه مردمان از راه میل و رغبت فوج فوج در دین الله تعالی داخل شدند. عفو و چشنپوشی پیغمبر خدا صلی اللہ علیه و سلم در مواضع مختلف تأثیر معنوی تربیت قرآن کریم را در اعواق دلها بگذاشت و همچنان بیش از بیش موجب گرمی ایمان دل باختگان اسلام گردید بنابراین ملاحظه می گردد که نحوه پیشرفت در عصر نبوی مرهون و گیروگان چی عوامل بود البته اسلام را باید بر این دوران متکی دانست و از اینجا شناخت زیرا اگر بالفرض خلیفه هم بعدها به زور و جبر عمل انجام داده باشد در اصل مایه اسلام که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام نمایان گشت چنین روشی در کار نبوده است و اگر اسلام جنگ بر قصد قصد کشی و از بین بردن فساد و فتنه و اعلای کلمه توحید در میان بوده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله با آنان بجنگی تا دیگر فتنه نباشد و دین مخصوص خدا شود نه آدمکشی خونخاری کشورگوشایی استعمار و ملل ضعیف در از محسوب گلبوهای مجهز در برابر های مهاجم پیکار می‌نمایند و دفع فساد و فتنه ای که موجب ازمیان رفتن نظامات درونی خواهد بود اما در دوران های بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام اسلام شمشیرزنان زنان آنچنان مؤمن و مجاهد ساخته بود که بدون سلاح جنگی در برابر فیل سواران ایران و لجیونهای های نیرومند روم با ایمان محکم سرسختانه می جنگیدن و پیروز می شدن. بنابراین نسبت به ایمان آن سپاهیان مجاهد و بسیار نمی توانیم اتحام زور و جبر را به میان آوریم برای آشنایی با قدرت معنوی مسلمین مناسب از واقعی را از تفسیر ابو الفتح رازی جلد اول صفحه 16 و 17 نقل نماییم. خالد ابن ولید با بر سر حسن خیرا فرود آمد و گفت مرد عاقل را بر من بفرستید تا با او سخنگویم. گویم عبدالمسیح ابن بقیلا الغانی را بر او فرستادند و او از معمران بود چون خالد در وی نگاه کرد گفت چیست این که به دست می‌گردانی گفت سم مساعت زهر یک ساعت است گفت اگر بنا نزدیک تو چیزی نباشد که موافقه باشد مرا و اهل مرا بخورم و خیشتن باز رهونم که از عمر من جز اندک نمانده خالد گفت مراده و آن زهر از او 22 گفت بسم الله رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء بسم الله خالق الاشياء گفت به نام خداوند آسمان و زمین که به او هیچ چیز گزند نکند و زیان نرساند آنگاه زهر در دهن نیهاد و و فرو برد. یک ساعت رعشه در او درآمد و سر جنبانید آنگاه عرق کرد و بهوش آمد. پنداشتی هج رنج نبوده است او را. این نمونه است از نیروی توکل مسلمین بر الله تعالی و عقیده به حفظ و نگهداری او. در برابر چین مردان پولادین هج نیروی تاب و مقاومت نخواهد داشت و خواه نخواه در هم میشو کند. چنان که خالد بن ولید رضی الله عنه در نامه‌ای که پس از فتح حیره سوی ملوک ایران ارسال می‌دارد، دارد، می راستی هنگامی که سپاه اینچنین نسبت به مرگ در راه الله تعالی بپروا باشند، مغضوع مسلمان شدنی آنها بزور شمشیر هزیان بهودگوی و مسخره نیست. امیر علی رضی الله عنه روزی در کوفه با مردم نماز صبح را خاند چون از نماز فارغ گشت آنان را وعظ و نصیحت کرد و خودش گریه نمود و آنها را از بیمی الله تعالی نیز به گریه آورد و گفت. سوگن به الله تعالی در روزگار دوستم رسول الله صلی الله علیه وسلم با اقوام زندگی را گذراندم که صبحشام جولی دموی و غبار آلود بودن. میان چشمانشان از بسیاری سجده چون زانوی شطور پینه بسته بود. شب را تا صبح در حال سجده می گزراندن. هرگاه که پاهای آنان کفته میشد، شد، به پیشانی بر می افتادند و چون پیشانیشان به درد می آمد، برپا می و پروردگار خیش مناجات می نمودند و درخواست داشتند که آنان را از عذاب آتش رهایی دهد. سوگن به الله تعالی آنها را با همه این احوال دیدم که ترسان و بیمناک از خوف الهی بودند. این توصیفی است که علی رضی الله عنه از یاران پیغمبر و مجاهدین صدر اول میفرماید. و با این بیان می توانیم روحیه پولادین تربیت شدگان مکتب قرآن را بشناسیم راستی چی نیرو و چی قدرت در برابر چین مردان حقیقی که در افق حیات خود جز الله تعالی را نمی و جز فرمان الهی را نمی میتواند می تواند مقاومت نماید علاقمندی این گروه آهنین به قرآن کریم به اندازه بود چنان که ملاحظه نمودیم در هنگام خطر و شکست نیز با یک یا اصحاب صورت البقره موقلب گشته و بر سر کفار حجوم می آوردن. آره اگر شمشیر زد شمشیر زنان این چنین نیز تربیت نمود و بدین این صورت قدرت تربیتی خود را که در مکتب از مکاتب بشری دیده نمی شود نشان داد. با این همه کشورهای بگانهی که مسلمین به آنها دسترسی پایدانه نمودند، به گواهی تعریخ غالباً نه تنها نسبت به منطق قرآن دشمنی نشان ندادند بلکه کینه عرب هم مانع مسلمان شدن آنها نگشت زیرا مثلاً ایرانیان، زرتشتی یا دیگر ملت‌های جدید و الاسلام می توانستند به طور پنهانی آیین خود را حفظ نمایند و به کودکان و فرزندان خود بیاموزند و چون تسلط عرب مرتفع گشت با آیین گذشته و سنت‌های دیرینه خود بازگردند در حالی که ملاحظه می‌نماییم نه تنها از اسلام مرتد نشدن بلکه بزرگترین مدافعین و دانشمندان اسلامی از میان همان مردم برخاستند و به عنوان نمونه کلیه مؤلفین کتب ششگانه اهل سنت صحاح الست و, و اصول مصر که کشور فراعینه به شمار میرفت و حتی در اندلس دانشمندان مسلمان چون ابن رشد و ابن حزم برخاستند Badonishgohi khadi miwwa azami al azhari misur tawajushavat, En manzara yikam nazir haki az om kimahana wiyat wahakani yati ta' yukurani majjidas. Kinishon me di Hatchigunadushmanwa tahtita asiri nufusiruhani kut, وخصومة را بمحبات تبديل من المعيش فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقدر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقدر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفنى المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقدر لكل غد رزق يعود جديد اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی رسید. البته در این بخش از تحولات داغی هفته شما را با خبر میسازیم. روز جمعه 16 شعبان مطابقه 6 جولای. چین 702 تن را به دست داشتن به قاچاق اطفال دستگیر نموده است، وزارت امنیت عمومی چین گفته است که پلیس در یک عملیات گسترده در 19 ولایت این کشور یک هشتاد یک طفل را از چنگ قاچاق برانی اطفال نجات داده است و گفته وزارت امنیت عمومی چین در این عملیات دو شبکه قاچاق برانی اطفال از هم پاشیده و رهبرانی آنها دستگیر شدند. وزارت صحیحات عامه افغانستان وضعیت شماری از افراد رو وقتی میداند که در نتیجه آتش سوزی اخیر در کابل زخمی شدند. دکتر سید کبیر امیری، رئیس شفه مرکز در وزارت سیحتیام افغانستان، در یکی از رسانه های کفره گفته است که در حال حاضر دهاتن از زخمی های این حادثه در شفه خانه ها بستری اند و گفت که مجموعاً 90 نفر زخمی داریم، 19 کشته که 50 فیصد حالت زخمی ها وخیم است. قماندانی امنیتی ولایت کابل گفته است. در تجوات آتش سوزی یروزی چهارشنبه در یک ذخیره‌گاه گازی مایع در منطقه پکتیاکوتی کابل حدود 17 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند نیروهای امنیتی پاکستان گفتهاند روز جمعه در نتیجه حمله طیاره ای بدون پیلوت آمریکایی بر یک مرکز مجاهدین در منطقه قبیله ای شمال غرب پاکستان 12 تن به شهادت رسیدند این طیاره ای بی پیلوت دو راکت را در یک خانه در منطقه داتاخیل در 35 کیلومتری شرق میرانشاه پرتاب کرد روز شنبه 17 شعبان مطابق 7 جولای در مرکز ولایت فرا در نتیجه پرتاب سه راکت یک زن کشته و 27 تن دیگر به شمول دو پلی زخمی شدند عبدالرحمن جوانده سخنگوی ولایت فرا گفت هدف این حمله ساختمان مقام ولایت بود مرتددین میگویند که از سوی مجاهدین 3 راکت پرتاب شده اما این راکت‌ها به هدف نرسیده دو آنان به دیوار این ساختمان و یک تنی دیگر در یک بازار اصابت کرده است. در نتیجه انفجار یک ماینی کناری جاده در ولایت اروزگان تن کشته شدند. جزئیاتی بیشتر در این مورد بده دست نیست. در اثر تصادمی یک بز در شمار اوکراین که ظاهران روسی را انتقال میداد چارده تن کشته و بست دو تنی دیگر زخم برداشتند. وزارت حالت استرار اوکراین گفته است. که بس حامل پسزان منحرف شده در دره کنار شهر را سخوت کرد که راننده اداره موتر را از دست داد در اعلامه نشر شده از سوی این وزارات آمده است که این بس ظاهرین روسی را به یک معبد مسیحیان ارتودکس در شهرک اخوایف انتقال میداد یازده تن از غیر نظامیان در نتیجه حمله افراد مسلح در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند مقامات افغانستان میگویند که روز شنبه در نتیجه حملات در مناطق مختلف یک زن و چهار طفل کشته شدند. مقامات نیروهای بین می میگویند که روز شنبه یک سربازی آنها در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شده است. در رسانه های کفری در مورد هویت این سرباز و محل دقیقی وای چیزی گفتن شده است. مقامات روسی میگویند در نتیجه بارندگی و سرازیر شدن سیلابه در جنوب روسیه بیش از 170 تن کشته شدند با گفته مقامات بیش از 13 هزار نفر از این بارانها آسیب دیده و حدود 5 هزار خانه نیز زیر آب مانده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همراه با مقامات وزارت حالت اضطرار و سایر صاحب منصبان روز شنبه وسط هلیکوبتر به منطقه سیلاب زده سفر کرده است مقامات در سوریه می گویند روزی شنبه در سرد تا سر سوریه بیش از 60 نفر کشته شدند. ناظرین حقوقی بشار سوریه میگویند در جمله کشته شدگان 31 فرد ملکی 19 عسکر و ده نفر از مجاهدین و مخالفین بشار الاسس شاملند. این کشتار زمانی صورت گرفت که نیروهای سوریه بعضی قسمت‌های ولایت نارام هلپ را بمباردمان کردند. در همین روز نیروهای لبنان میگویند در نتیجه فیر توپها و ها که بروز روز شنبه از داخل خاک سوریه به شمال این کشور شلیک گردید دو دختر لبنانی کشته و ده نفر دیگر زخمی گردیدند این حادثه بعد از آن صورت میگیرد که به روز دوشنبه لبنان یک راکت را بالای خاک سوریه فیر نمود که در نتیجه آن دو پلیس سرحدی سوریه زخمی شدند روز یک شنبه شعبان 8 جولای مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند چهارده فرد ملکی روز یکشنبه در اثر انفجاری بم کنار سرک در ولسوالی ارغستان این ولایت کشته شدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در یک از رسانه های گفته است که موتر حامل افراد ملکی به ماین کنار جاده تعبیه شده تصادم نمود که در نتیجه آن چهارده تن کشته و سی تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفتند که در 24 ساعتی روز یکشنبه در ولادهای کنر، غزنی، خوست و قندهار یک سرباز ارده ملی کشته و یازده تنی دیگرشان جراحت برداشتند. مقاماتی بین الملی گفتند که شش سربازی آنها در اثر انفجار بم کنار سرک در شرق افغانستان کشته شده است، تو در این مورد جزئیات نداده است اما رسانه های کفر فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که این کشته شدگان همه سربازان آمریکایی میباشند پیش از این در نتیجه عملیات مجاهدین یک سرباز خارجی کشته شده بود روزی دو دوشنبه 19 شعبان مطابق 9 جولای مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند که مجاهدین بر commandانی امنیه مارکت نور ممتاز و دیگر مناطق این ولایت جا شده بودند که حمله اول را در روبروی قمندانی امنیه این ولایت انجام داده زیر حملات خیش قرار دادن در نتیجه این عملیات نظر به گفته مرتادین سی پلیس کشته و 18 دیگر مجرح شدند و همچنان افزوده است که در این رویداد به افراد ملکی نیز تلفات رسیده چنانچه شش تن از افراد ملکی نیز جراحت برداشتند باشندگانی ولسوالی پرسونالی ولایت پکتیا پس از آن بر ضد مجاهدین سلاح برداشتند که شب دوشنبه مجاهدین با استفاده از سلاح سبک و سنگین بر مقر این ولسوالی یورش بردند مردم محل گفته است که در این نبرد شماری از مجاهدین زخمی شدند رسانه های کفر می رسانند که در این جنگ به مردم محل آسیب نرسیده است زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که در این رویداد بهش از 10 پلیس کشته و شماری زیادی آنان زخمی شده‌اند مقامات امنیتی ولایت اورزغان میگویند که در نتیجه یک انفجار یک تن کشته و 26 تن دیگر جراحت برداشتند. این رویداد ساعت 4:30 روز دوشنبه رخ داد که در میان زخمیان یک سارنوال یک دکتر و دو پلیس شاملان فرماندهان امنیتی این ولایت میوید که این بم در یک بویسکیل جاساده شده بود مقامات امنیتی ولایت سمنگان میگویند در نتیجه یک حادثه ترافیکی صبح روز دوشنبه 9 تن از سربازان اردوی ملی کشته و بیستو یک تن دیگرشان زخمی شدن. اردوی پاکستان میگوید که هفت اسکر و یک افسر پلیس روز دوشنبه پس از آن کشته شدن که افراد مسلح واربر بر سایکل بر یک کمپ اردو در نزدیک اسلام آباد آتش کشدن. اردوی پاکستان در اک اعلامیه گفت پنج پرسونل امنیتی در این حمله قدان زیکی وزیرآباد در, وزیر در 155 کیلومتری پایتخت اینگشت و رخداد جراحت برداشتند. روزی سه شنبه 21 شنبه مطابق 12 جولای، در نتیجه یک انفجار در ویلایاتی پکتیا دو سربازی اردو ملی کشته و سه سربازی اردو ملی و شامل یک پلیس زخمی شدند. روزی چهارشنبه 21 شنبه مطابق 12 جولای وزارت اطفا افغانستان میگوید حملات مجهادین بنیروای افغان افزایشی افتاده است. جنرال زایر زیمیر روزی چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفته است که حملات مجاهدین به نیروهای افغان 40 درصد افضایش یافته است و همچنان افضاد که در 21 روزی ماه گذشته 49 ماین در ولایت‌های مختلف افغانستان منفجر گردیده است پروسه انتقال امنیتی از نیروهای بین به نیروهای افغان روز چهارشنبه در ولایت کندوز آغاز گردیده است رسانه های کفری که در این مراسم وزیر داخلی افغانستان لویدرستیز قوی مسلح، والی کندوز و نمایندگان قوی آیصاف در شمال افغانستان اشتراک کرده بودن. ولایت کندوز بعد از ولایت کاپیسا دومین ولایت در شمال افغانستان است که دور سووم پروسه انتقال در آن صورت می ناتو در بره انفجار یک بمی کنار سرک، خیچاره های آن زیره یک موتر نظامی را سوراخ کرده شش عسکری آمریکایی را در هفته گذشته در ویلایت میدان وردا کوش تحقیق میکند ناتو تحقیق میکند که این بم از نوع جدیدی بمها ها بوده و یا اینکه بم عادی دارای مقدار زیادی مواد انفجاری بوده است گفته شده است که این انفجار پس از کشته شدن شش عسکری آمریکایی در انتجه سقوط یک هلیکوپتر در ماه جنوری گذشته بیشترین تلفات یا اسکری آمریکایی را در یک حادثه واحد در پیدا داشته است گزارش‌ها می‌رساند که یک اسکاری ناتو در نتیجه انفجار یک بمب کناری جاده در جنوب افغانستان کشته شده است. ناتو جزئیات دیگری را در این مورد ارائه نکرده است. گزارشات کوفری می‌رساند که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 232 عسكري ناتو در افغانستان کشته شده است. مقامات امنیتی یمن می‌گویند که در نتیجه یک عملیات استشهادی حدیاقل 22 تن در آکادمی پولیس در شهر سنا کشته و ده دیگر مجروح شدند. مردان مسلح ناشناس تعمیر یک مکتب را در ولایت ننګرهار موردی حملات بمبی قرار داده آن را به طور کلی از بین برده اند در نتیجه تصادم یک موتری حامل افراد ملکی با یک موین کنار جاده در ولسوالی اندر ولایت غزنی سه فرد ملکی کشته شدند پلیس دینمارک میگوید یک جوانی 20 ساله افغان روز چهارشنبه در داخل یک باقی وحش موردی حمله سه قرار گرفت و جان داد سفیر سوریه در عراق نوابل فورس تایید کرده که از حکومت خارج شده با صفاف مخالفین رئیس جمهور بشار الاسد پیوسته است این اولین دیپلمات ارشدی سوریه است که از حکومت رئیس جمهور بشار الاسد که تحت فشار شدید قرار دارد جدا می شود نوابل فورس در یک نوار ویدیویی که از طریق شبکه اجتماعی پاستبوک به رسیده گفته است من اعلام می کنم که از این لحظه به بعد به مردم سوریه براستم فارس در مورد محل اقامتش معلومات نداده است. رئیس جمهور کرزی میگوید که مسئله حملات راکتی پاکستان بر مناطقی سرحدی افغانستان را از طریق صحبت با مقامهای پاکستانی حل میکند. مرتضى کرزی که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد تاکید کرد این حملات پاکستان را به حملات بل آن جواب نمی و وی همچنان گفته است که تا کنون مشخص نگردیده که آیا این حملاتی راکتی از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و یا از سوی مجاهدین ای که در مناطق سرحدی فعالیت دارند. به اساس گزارش ها از دو مابدین طرف، ولایت نورستان، کنر و بخش از مناطق سرحدی این کشور زیر حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفته است، شماری از دختران ولسواری نجرا ولایت کاپیسا صبح دیروز مسموم شدند. سلطان محمد ساقی ولسواری نجرا ولایت کاپیسا کابیسا به رسانه های کفری گفته است که تعداد شاگردانی مسموم شده به می رسند. وی گفت که این شاگردان به شفاقان انتقال داده شده وضعیت صحی صحیح پنجتنی آنان وخیم میباشند. مقامات در پاکستان میگویند نوکار آموز پلیس توسط مردان مسلح در شهر شرقی لا بازار ضرب گلوله به قتل رسیدن. گفته شده است که مردان مسلح واردی ساختمان شدن که این افراد در آن خواب بودند. بالای آنان تیراندازی کردند. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان احسان الله احسان گفت که مجاهدین این حمله را به خاطر انتقام گیری از شکنجه زندانی مجاهدین انجام داده است. گزارش ها می که افراد کشته شده برای آن که معمورین زندان شوند آموزش می دیدن. مقامات گفتند که حمله کنندگان نقاب برو داشتند، بر سایکلها بلعالپور آمده بودند. این دومین حمله در سه روز گذشته بالای نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت پنجاب است. مقامات ولیت لوگر میگویند در دور سیوم انتقال مسئولیت ها از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، تأمینی امنیتی پولی علم، مرکز این ولیت و ولسوالی خوشی دیروز به نیروهای افغان سپرده شد. حامد کرزای از امیرالمؤمنین ملا محمد عمر خواسته است تا با دست کشیدن از جهاد به فعالیت‌های سیاسی اشتراک ورزد اما ملا محمد عمر در گذشته این چنین پیشنهاداتی کرزای را رد نموده و حکومت افغانستان را دست نشانه غرب خوانده است یک زلزله به مقیاس 5.8 درجه رکتر نقاط مختلف افغانستان و قسمت‌های تاجیکستان را بین سلسله کوههای هندوکش تکان داد گفته می‌شود که مرکز این زلزله در 73 کیلومتری فایزآباد مرکزی ولایت بدخشان بوده است پایان اخبار کتان تفرح للموت كما في ساح في عزیز این بود داشته های برنامه امروزی که به خدمت شما تقدیم گردید تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حطمت قلبی یا مهاجر بالرحیل و في الظلام بلا دلیل. قمت قلبي يا مهاجر بالرحيل وتركت روحي في الطلام بلادني دليل أجتر أحزاني وأشرب حسرتي وهز صدر الكون من فرط العويل وما مس صدر الكون من فرط العويل او هكذا الدنيا تفرق بيننا بيننا عجبا لها تد في الخليل عن, الخليل عن الخليل او هكذا الدنيا تفرق بيننا بيننا عجبا لها تد في عن الخليل يقول بنبضه ألبستني يا راحل الحزن الطويل قدت الجزيرة بارتحالك بلقان من أين لي من بعد فقدك بالبديل واسمع فؤادي إذ يقول بنبضه البستان يا راحل الحزن الطويل قدت الجزيرة بارتحالك بلقان من أين لي من بعد فقدك بالبديل من أين لي من بعد فقدك بالبديء أخذ قلبي يا مهاجر بالرحيل وتركت روحي في الظلام بلا دليل قمت قلبي يا مهاجر بالرحيل وتركت روحي في الثلام بلا أجتر أحزاني وأشرب حسرتي وهز صدر الكون من فرط العويل وغز صدر الكون من فرط العوي فالصف غار من المشاعر ماهو ما وتبدل الإثار والقصد النبي فالصف غار من المشاعر ماهو ما وتبدل الإثار والقصد النبي I walk لا قطرة لا أذهبت ضمأ ولا قطعت غليل إن افتقد داخل مكارم ثلما في عالم الإثارة والطبع العصي ما عاد في الأحواض إلا قطرة لا أذهبت ضمأ ولا قطعت غليل إن افتقد داخل مكارم ثلما في عالم الإثارة وقبل الصي في عالم الإثارة وقبل الصي حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل وتركت روحي في الظلام بلا دليل حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل تركت روحي في الظلام بلادي.